أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارک على محمد وعلى محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم حمید حميد مجيد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله و والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلمانان محترم یکی از موضوعات دا و خطرناک امروز که مردم ما و بخصوص زنا و دخترای مسلمان زیاد به او گرفتار هستند و زیادتر وقتی که بحث میشه و یا گفتگو میشه در این باره اکثرا های بیچاره دخترا نمی فامند بخاطر از ای که ما در افغانستان مشکلات زیاد داریم یک مشکلی است که احیانا به مو اندازه که مردا و جوانا و طبقی زکور میتونن که از دین مستفید شوند زنا شده شون نمیتونند بخاطر ازی که امکانات درسی و تحصیلی برای زنا بسیار کم است مشکل دیگه مشکل استعمار است که همیشه از حقوق زن صوب و شام گرد میزنند و وقت که نتیجه شدن پرسان کنم بلاخره منظور از حقوق زن خلاصی کلش اینمیه است که زنا باید بی سطر شدند، بی باید اینا شخصیت خودا از دست بدن و مورد استفاده مردها قرار بگیرند به این خاطر زیادتر خواهرای عزیز ما از تعلیم اسلام محروم هستن و ما کوشش میکنم که بعضی از درسای ما مخصوص خانمها ها بگیرم اگرچه شاید اینجا جوانا هستند و وقت ما از خانم ها و مسئولیت خانم ها و ضرورت از اونا صحبت میکنیم این منحصر بر خانم ها نمیشه خاطر ازی که هر اشتباهی که از زن ها میشه ای قیدی کلی هست که به همراه یک مرد چهار زن، با همراه یک زن مرد داخل دو زخم اگر یک زن با دو زخم برا، بنان پدرش، برادرش، پسرش و شوهرش، این چهار نفر در قبال ازی مسئولیت دارن و اینا اینجا. اینا هم بمراش به به دو خاط رفتن خب ما زیاد مقدمه نمیگم می میرم اصل موضوع که یک آیه قرآن است که در سوره الاحزاب آیه 33 است که یک قسمت از آیات شریف است که خداوند متعال جل جلاله میگه که ولا تبرجنا تبرج الجاهلیت الاولان در این قسمت علما چی میگن؟ علمان میگن که اینها منصور از ای تبرج جاهلیتی است که اینها با زینت و بالباس و برهنه و یا هم بی از خانه خارج نشن مثل که زنهایی که در جاهلیت اولی در عصر که پیش از اسلام بود زنهایی مشکل داشتند و جاهلیت عصر جدید که امروز هست این هم عین و جاهلیت عصر قدیم بارست خب این حالی اینجا ما میم که تبروج چی قسم میگن؟ میگن ات تکشف و ظهور و للغویون است که انسان مثلا خودا کشف بکنه و خودا در مقابل چشمای مردم ظاهر بسازه و سما ایدات البروژ که میگن یا بروژ آسمان هاییست خاطر ازی که در مقابل بروج آسمان ها برژ های آسمان است کدام پرده وجود نداره بی سطر هستن ازی قاطع تبرج هم کسی را که انسان بی سطر باشه و سطر نداشته باشه. و وقتی که میگم به بیبی آیشه رضی اللہ تعالی گفته شد که یا امب المؤمنین ما تقولینا فی الخداف و سباغ و تماعی و القرطین و خلخال و خاتم زهر وقتی که از بی بیبی آیشه پرسان شد که شما در باری اینی چیزهایی که زنها استعمال میکنن خینه هست و رنگ هست و مثلا بعضی چیزهای دک کردنهای فرویزان میکنن و گلوبند و دست بند و پایزی و یکپا دیگر بیبی آیشه میگم گفت که ی يا معشر النساء قصتكنا قصة امرأة واحدة من قصة شمار قصة احل الله قولکنن زینت غیر متبرجات لمن لا یحلو لکنن دیگه میگه خداوند متعال جلجالوهو بر شما حلال گردانی زینت و زیبایی را که از تمام مزید استفاده بکنین بر کسایی که چی است؟ دیگه که غیر متبرج در مقابل کسایی که بردان حلال نیست در مقابل از او آشکار نشین اما اگر مثلا در مقابل شوهرتان در بین خانه اگر هر چیز استفاده میکنین بر شما کلش خداوند حلال گشته ده به شرطی از اینکه شما را یک نامحرم با اینمی زیباییهاتون نبینند خب اصل گپ اینه که یک حدیث شریف است که من اصلا درس امروز ما سر اینمی حدیث است غالبا میخواستم امی حدیث شریف را زیاتر شرح بکنم ای حدیث شریف است که حضرت ابو هریره رضی الله تعالی نه میگه میگه قال رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه رسول اکرم صلی الله علیه و گفت سنفان من اهل النار لن ارهما هما ای حدیث شریف لطفا شما یادداشت کنید و لطفا ای حدیث شریف بر تمام اعضای فامیلتان برای خواهرانتان، برای مادرانتان، برای دخترانتان برای همسرایتان به خاطر ازی که اگر نکنیم در روز قیامت دستای از اونا در یک خنمان می باشه. م خاضایی می است که یا سیدی ازیره، و یا خودتان اهلیث شریف نوشته بکنین و مناییس یک انسان مسلمان مسئول وظیفه دارین که ایر حتما برای از اونا برسانین حدیث شریف حضرت ابو فرایه رضی اللہ تعالیه روایت میکنه میگه قال رسول الله صلی اللہ علیه وسلم میگه رسول کریم صلی اللہ علیه وسلم گفت سنفان من اهل ناری لم ارهما دو طایفه دو سند دو گروه از دوزخی هاست که لم ارهما پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم میگه که ما او دو گرو را تا حال ندیدیم جماعه منایرمیشانم امام نووی رحمت الله علیه در شرح حدیث شریف میگه که این حدیث شریف از معجزات حضرت رسول کریم صلی الله علیه و است که پیغمبر صلی الله علیه و salam خبر میده دو تایفه از دوزخی ها هستند که در زمان من نیستند ای دو طایفه در اصر من نیستند اصر پیغمبر صلی الله علیه و سلم عصر پاکی بود اصر صفایی بود اصر تهارت بود عصر باحایی بود حل اصر غیره بود دو طایفه خلق دی چه نبی کریم صلی اللہ علیه و سلام وایت چه ما ندلید لی لم اراه ما یعنی دماغ زمانه که در خلق نبود. اروسته لیمانه و پیدا که گی اروسته چیز دنیا نزم بیا اروسته چیز مسلمانان دیده مسلمانان په منست که دا خبره به پیدا کیږي او دا خبره فخوان نو این دو گروه در زمان و در عصر ما نبودند گروه اولش کده مردم هستند گروه اولش میگه قومون ما هم سیاطون که البقری یضربون به هنناسه قومن. یک تعداد از اشخاصی هستن که به امرایشان چی میباشه سیاد جم سوت است به سین نوشته میشه سین و که در زبان عربی اونامو کمچین یا دره را میگن مثل کمچین ما میگیم در فارسی که کمچین ها در دستایشان میباشه مردم هم میزنن در عصر پیرانبر صلی الله علیه و سلم حقوق انسان مراعات می شود. شخصیت یک انسان مراعات می شد پیغمبر صلی الله علیه وسلم وصیت می کرد که حتی طفلته و یا کسی را که می زنی کوشش که قذبناک نشی کت سیری در روش نزن امرای قمچین باید کس, کس را ندن. لاکن پیغمبر صلی الله علیه و میگه یک طائفه از دوزخیها ها مردهای هستند که اینا غالبا در دان دروازه های وزرا باشند، در دان دروازه های والی ها باشند، در بین شار به شکل پلیس و به شکل نفرای امن باشند، در بندی خانه ها مسلمان ها را که میبرند بندی های سیاسی می کنند به خاطر اقرار گیری شان می اینی دوزخی های هستند که حقوق انسان امراات نمی کنند شخصیت مسلمانه در نظر خود ندارن از این خاطر قمچین در دستش است و هر انسان که در آمد اگر یک کراچیوان بیچاره در آمد یا یک جای کدام محفل است در بسیاری از خوشی ها و در بسیاری خیرات ها که نامش خیرات میبرند چون خیرات اسلامی نیست یک بی‌تربیه و یک بد در دهن دروازه استاد می که یک کمچین در دستش است و بیچاره را که قمچین میزنن رسول خدا صلی الله علیه و سلم برای از اینا میگه که اینی مردم هایی که حق انسان و شخصیت انسان و کرامت انسان و یکی انسان خدای عز و جل منحیث اشرف المخلوقات پیدا کرده ایره مراات نمی کنن در دستشان قمچین های هستن و با قمچین ها مردم میزنند. میزنن بایر همست میگه در عصر ما ایگف نبود من ها دیده تابال. لم تاباله لم ا نه والی پیغمبر الله اللہھی ض 2017 نه پولیسی پیغمبر صلی الله علیه و سلم نه نفر عمل پیغمبر صلی الله علیه و سلم نه نفر شاروالی پیغمبر صلی اللہ علیه و سلم این کار رو ای جنایت نمیکرد میگه من ندیدیم در حصر ما ای جنایت ها نبودerst ای جنایت ها فسان پیدا میشه این دوزخی ها فسان پیدا میشه این ای یکی. خب این یک قسم دوزخی ها هست قسمت دوم که گفت که اینا هستند گفت ونساء و زنهای هستند و زنهای هستند کاسیاتون زنهای هستند هستن کاسیات چی مانا کاسیات در زبان عربی کسا لباس میگن میگن، کاسیات... خانمه که لباس داشته باشن، کاسیاتون یعنی های هستند که لباس پوشیده اند کاسیاتون، لیکن اینا کاسیاتون آریات هستن، آری چی میگن، آری یعنی برحنه؟ کاسیاتون، آریاتون، ای گروه از زنهایی که دوزخی هستند در آتش دوزخ خواهند صبح و پیغمبر سه هم گفته که در زمان ما ای قسم زنها نبود عصر نبوت عصر پاکی بود عصر تحارت بود عصر بود که زنها لباس اسلامی داشتند میگه در عصر ما این نبوده لم لمعراهما یعنی پسان باز پیدا میشه چه قسم زنها هستن؟ کاسیاتون آریاتن. یک صفحه چون چی هست؟ که لباس پوشیدن لیکن برهنه هستن وا. ای پیغمبر خدا این قس... ای چه قسم هست که یک لباس داشته باشن و برهنه باشن لباس داره برهنه هستن یا لباسش نازک هست و امروز ما شما به چشمای خود میبینیم لباس نازک میپوشم خودش میگم من چادر پوشیدیم به نظر خودش چادر گاچ پوشیده چادر دارم اما چادرش مثل لونگیمه وارد چادر گاچ هست سهی وقتی که ایر فوز خود رو بستن میکنم یا ایر در سر خود میکنم رویش و چط معلوم میشه قاسیاتن آریاتن پیش خودش پت است پیش خدای عزوجل چی است برهنه هست پیش رسول خدا برهنه است خدا فرید میده کاسیاتن آریاتن لباس پوشیدن آستین داره لکن از زیر آستینش جنسش معلوم میشد دستایش از, از, از, از این قسمت تا پایین کلاش آستین گاز جور کرده کمیس لری کاری لری گاش تکره میدهی و تروری او حقا وایی چه زی, زی خودی را با سطر را خزایم. ای من زی فلانی حاجی صاحب خزایم. او نامحرم و سرکینی ویخته مالومی گی اخبالا وایی چه زی کاری لرم خو رسول د خدای و تا وایی چه ای خوره پده گاش تکری بانده ته با حجاب نهی نه چه نامحرم و سرکینی هر اخیزه چه نامحرم و سرکینی او ویفته معلوم سی معلوم سی دبی حجاب دار زنسا دیر که دیندار او با حیا او با شخصیت وی خودش پیش خود فکر میکنه موالا با حجاب هستم لباس دارم چادر گاش صحیب ده سرش هست و چادر گاش اکی دید دپلارد کاکاز و استره هیم سی خصور بچه مانده نگوشی دامات بیادر مانده نباشی که تایی قرار مانده که کسا میکنه چادره که گاجش از نیم سرش مویش کلش معلوم میشه و از چادر گاجش گلویش چوتیاش مویش کلش از یک سر معلوم میشه کاسیاتن عریات هست کاسیاتون عریات هست لباس داره به نظر خود لیکن پیش خدای عزواجل پیش پیغمبر اسلام در فقه اسلامی چی هست بره هست یا لباسش چی باشه نازک است نازک است که بدنش معلوم نشه یا لباسش دیگه کی کاسیاتون آریات است وان که خواهرای ما بوفا چرا گردن خدا بسته بکنیم نه والا خفه نسازیم استاد هر وقت شما مثلا میگین خواهرها خفه هستند حالا چطور کنیم خواهرها به خدا اگه من میپرسمین به فایده تان است برتان میگم که بیخی بپشین لباس هر قسم لیکن عدیس پیغمبر خدا هست و ما مجبور هستیم برای شما تبیلید کنیم ما مجبور هستیم گفت حق برطان برسنیم خوشت آمد قبول کردی خوب که در آخرت از یک خرم من نگیری خوشت نامد گپ گپ گپ من گپ رسول خدا صلی اللہ علیه وسلم هست داد ما خبر را ندن. داد نبی کریم صلی علیه و علیه وسلم خبر را ده که یک قبله ای هم سلده لیکن مون که مسئولیت لگوشی باید تاسته بایی دوون درجه کاسیاتن و آریات که اصلا زنهایی که لباسهای چست می بوشن آله در اقوانستان کاسیاتن کاسیات و آریاتان پیدا شده آله پردونهای چست آله مردها واصه ما بچا نگویید والا ما گپ خلاص هستیم او پیغمبر صلی الله علیه و سلام اینا گفتن لکن عالم مگه فضل الهی که میسر شود خوانده و ناخوانده برابر شود فضل الهی که میسر شده دخترها بچا برابر شده همه این لباس این می پوشن امیشه ما سر زن هست لیکن بسری بچه ها وقتی که سال کنیم اتو پدون چست می پوشن. خدا در سپورت و در میدان سپورت و در میدان والیبال و در بوکسنگ و در خصوصا دا دا دا دا دا دا برداری نبرید کاسیاتن آریاتن لباس دار رسول کریم صلی الله علیه وسلم شما کتاب های فقی رو در کتاب های فقی شرط کردن که کاسیات آریا کی هست تشریح میکنه علماء یک کسی که لباس بپوشه شرط از در لباس که باید بر... تنگ نباشن نازک نباشن هم بر مردها شرط هست هم بر زنها شرط هست شرط لباس بر مردها هم هست که باید لباس نازک نپوشش. وابرد زنان ها هم هست کی لباس نازک باید نپوشن آیا یک مرد خیلی لباس های نازوک که های نازک بپوشه که اعضای بدنش معلوم شود عورتش معلوم شود ترک فرض نکرد، بلکه ترک فرض کردن. بسیاری از ریشته فیداو و بسیاری از جوانانه. دمی امامای عمومی شما اگر کلان وقت رفته باشین در اونجا خیلی چیز، ادرآلی که پیغمبر صلی الله علیه وسلم تایین کرد که از زیران، تا زیر زانو عورتی خالی مردها هست. او روز یک کس آمد به چمه اگه خوستاد دعما هم می ربتم خلاست که بیخیه چونجا اورد مورد وجود نداشت داشت. زانوها از کلگی اگه معلوم میشن. برادر عزیز فرد است در تو هم. اگر از زنها کل بدنشان اورد است از تو هم از زیر نافتا و زیر زانو اوردت است. از زنها خو باز امی اندازی اوردشان خو باز امراه نامحرم است. از تو هم کتر مردم های نامحرم حتی مهارمت محارمت غیر از همسر و امراه دیگر ها برادرت با کلگی باید از زیرناف تازیر زانو معلوم نشن اینال دوم کسی کاسیاتون آریاتون کدام مردم ها هستن کسانه که لباس که چی می پشه قریصه تنگ و چسب که در بدنش چست بیدن قسم سوام اینال کاس... در کاسیاتون آریاتون کسی که پتلون کوابای چست بپشه در کاسیاتون آریاتون داخل میشه نمیشه اعضای بدنش مالوم میشه نمیشه وقتی که لباس چست پوشیده شد و که بلندی و پستی بدن مالوم شد و از پشت در دکن ای هم در حکم کاسیاتون آریات است سوام قسم کاسیاتون آریات کسا هستن که لباس هایشان کوتا هست لباس هایشان چی هست؟ کوتا هست نیماستین هم می پوشن برای دختر مسلمان پوشیدن پیران نیماستین هم حرام، ناروا، ناجائز او به هفت سدیان رو پاراچخ بلو خوزی کمیز جوره ای؟ او خیات یوری او کار کهی ارتوایی که ورور گلت تبی غیرتی تبی حیائی تبی شرمی تی دوستان و فلسکی داخلی گی و سلام اناله دامنک کوتا پتونک کوتا آسینکای کوتا ای در جمله کاسیات و آریات با خواهرای این که تو از این جمله که پیغمبر خدا برات میگه پنج وقت نماز میخانی یخن کتا یخن که ب... تا... تا... تا گلونش نمیرسن یخن نماز میکنه تا به اینجه یخن کلان کلان است او چه این قسمت معلوم میشه خوهر گل پنج وقت نماز میخانی پنج وقت عبادت میکنی نکو خدا دوزخی دای دا حدیث پیغمبر داخل هستی دای حدیث پیغمبر گران خوره به کمی صداسی لغری تا تا نه توله معلومی لو تپ کاسیات و ناریات کی داخل میگی او نبی کریم صلی الله علیه و آله چه ما و وقت دا دا که داس نیو کزه زن ها ده زمان ما این قسم نبود عمر ده کی خانه مقدامی قسمی خانه باز براش جور میکنه ای هم به امروای خانم خود خودم مستحق دوزخ میکنه. بر خانمایی تان گریا کنین، برای خواهرایی تان کنین، بر مادرایی تان، بر اگر زورتان تان نمیرسه گریا کنین. بلیاز خدا تو خدا دوزخ میری. مراکت داد دو دوزخ نپارت. مراکت داد دو دوزخ نپارت. اگر خودش تان داد دوزخ میپذرت، میپتمان آزمون تا تجور کو. خدا در تاعتری نه دوزخت ببرید میگفتیم اما مشکلی هست که به امرای یک مرد یک زن چهار مرد چی میشه؟ دوزخت بیره دوزخت بیره گردن هست که یک خرک جور میکنی با باز وقتی که یک مرد هایی برن از تا که شرمید بازگرد این قسم یک ما میگیره آه استاد آمده خانی بباشی چادرکس اینجا گرفتن دست خود قیطه گرفتن از من است از خدا بترس از من چی میترسی من خودم شادت نامه جنتی بودن ندارم من صوب زیادتر از خدا میترسیم از خدا بترسیم از زیستفیت میترسیم از عالم میترسیم اما از خدا نمیترسیم و پدر هایی که و او فقط که دخترهای های خود تشویخ میکنن، اولا های خود تشویق میکنند که ااقمی یخم جو کنندن لباس های سازن و به تفاوت هستند در مقابلشان، ای پدرها ضد آیت قرآنی که خدای عز و جل برشان میه که یا ایوها الذین آمنو ای کسانی که ادعایی ایمان میکنین و مؤمن اگر نیستین خدای عز و جل برشان که یا ایوها الذین آمنو قو انفوسکم و احلیکم شما هم خودو بقایه بکنین شما هم خودو بقایه بکنین و هم اعضای فامیل تانه از چی؟ از آتش دوزر وقود و هنناس و الحجاره که خدای از میهه که هیزم از یه آتش دوزر انسان ها و سنگ هاست علیه ها بالای نمی دوزه ملائکتون پلیس های خداوندی هستند، ملائکه ها هستن بسیار شدید خلازون بسیار سنگدل سندل لایعصون اللهم و امرهم معصیت خداوند در اوامر خداوند نمی کنن. اینجا برزخ هست قبر است که انسان تا وقت تا روز قامت در همین جونجا هست تمام دوباره دوباره وقتی که رفت که چیز زختر صدا میکنه که خدایا پروردگارا من نمیفهمیدم فامیدم پدرم من را در مسجد در درست نمیمان که بروم لیکن اینمی پدرم من اجازه میداد که من بروم در بین هوتل پدرم با بسیار برای من اجازه میداد که در پیش نام نامحرم استاد شد و ما بر و اندام مندازه من شد خدایا اینمی پدر بود که تفاوت بود. اینمی پدر بود که خودش روز چهل تا چهتر کات نماز و نفل میکند. خودش خط میکند، خودش قرآن شریف میکند، خودش احکام دینه سر خود تطبیق میکرد ولی ما را در آتش دوزخ انداخت و یک روز بر من گفت که بچین. لباس پنجابی که میپوشی که بقالایت معلوم میشه، ای در دین اسلام نیست از خدا بهتر. برم خودش تکمی کردی. خود پدرم، خودش عوهرم، خودی برادر. به اندازه خدای بغیرت بود که خودش استاد میشد مرا می گفت که تو کت دوکاندار گفت بزن من دوکاندار مشتری مبود بود تنها فیصه میداد که کت دوکاندار نامحرم من پیشیزی میکردم خدایا تو خود ذات غفور هستی خدایا تو خود ذات عادل هستی خدایا تو ذات منتقم هستی عزیز پدر بغیرت من انتقام بگی که من از تو زخم بردم زن دختر، همسر و خواهر در روز قیامت استاد میشن و هر چوری این مردا رو میکنن در مقابل خدای عزوجل و, و خدای عزوجل از عجز بیچارگی خود نیاز میکنه که پروردگارا این مردم افغانستان اگه در مسجد برش بگویید که میخواهیم یک بخش بسازیم در مسجد برای زنها که زنها هم به گپای دینو بشنون زنها هم به قران بشنون زنها هم به تبلیغ علما را در مسجد بشنون دست ریش سفید استاد میشه و ی خن میکنن نمی مانه که کهدار حفاظ بسازیم نمی ماه که بخش زنانه در مسجد بسازیم اما اینی نفره که در مسجد در مقابل خدای از از خانه خدا مردم مان میشه عینی نفره باز ببینه که با اونمون به خود در اوتل مدر س نجر با اینمی ریژ کلان خود با اونمون لگی کلانه خود با اونمون قواره خود که مردم فکر میکنن ملائ است باز پشت سرش سرش سیلکننی که دخترای جوان از و سرش کلشان روان هستن قولایشان لچ سرایشان برهنه یه خنایشان باز است. و این تشویقشان میکنن بناران خدای عزواجل ای تو انسانهای مجرمه ای تو انسانهای بغیرته خدای عزواجل پیش از میزانها داخل دو زخم میکنه چه تو بغیرته تو بی ایمانه تو غیرت نلاره چه خزره نامحرم و فلک و سرکینی نامحرم و سرکگیگه از زر Allah, سبحان الله سبحانه الله تعالی او په ټول ملایکی دربانی وایي چې د خدای لعنت دې په تا باندې چې تخ خپل قربان دې راي نه وایي د خدای لعنت دې په تا باندې چې تخ خپل فرز ته متوجنه لورته به متوجنه ته چې راخم ایمان لري ته کوم قران باندې ایمان لري ته کوم حدیث باندې ته ایمان لري څنګه ځان ته مسلمان وایي بيغيرته بييمان د بلایکی دربانه د خدای له طرف لعنت در باندې ازی خاطر برادرهای عزیز بسیاری کسا هستن یازنه وقتی که درک خانه شد بجرد که دختر خود برکه ازداد خلاص یک خواهرک که یازنه ایش گرفتن ششتا خواهره دگیش برش لیلام هست ایکی بی غیرتی هست ایکی بی است. آیا یازنه انسان بر انسان محرم است؟ از برای خدا آیا دامات بیادر بر انسان محرم است؟ آیا دامات خواهر بر انسان محرم است؟ آیا بچه ای کاکا بر انسان محرم است؟ آیا بچه ای خاله بر انسان محرم است؟ آیا که یک بچه بیگانه در یک اولی کلان شدی و جوان شد بر براتون محرم میگن ای به تفاوتی که در افغانستان هست حرف تا عذی کرد در خانه یک به غیرت داخل شدیم یک وقتی که یک مرد کتی لندگر شیشتن یکی این بیاد در زاده بیاد در لعنت خدا سر اتومبلاهایی که بر خانه خود اجازه میده که بر بر بیاد در خانه آیا بیاد در خاندگی در اسلام بیاد خاندگی نیست در اسلام بچه خاندگی نیست در اسلام دختر خاندگی نیست یا از نسب باشی یا از رضا باشی یا از مصاحره که چیز باشه در هی رازو نبود در خاندگی است نه که است نه, نه دختر خاندگی است نه پدر است ای کلش شیطان بیست دوسیه عصر جدید است بی غیرتی عصر جدید است بی‌ایمانیت به نام ایمان است بی‌ایمانی به نام اسلام است بخور خوندگی رو که کشیده بذو پدر رو کی کشیده پیغمبر خدا در عصر جاهلیت انوز بالایش وحی نامده بود خودش زید ابن حارسه را یگان از صحابی که نامش در قرآن ذکر شده زید ابن حارسه است این بچه خود خانده بود مردم میگفتن که زید ابن محمد آیات قرآن نازل شد آیات قرآن نازل شد که بچه خاندگی در اسلام نیست هر کسه به نصب خودش نسبت بتیم بادزو پیغمبست سلام پیسلکش که آیت قرآن آمده از بچه خاندگی ممانعت شده بنا بادزی که از زید ابن محمد نگوید زید ابن حارسه بگه انام پدرش حارسه هست به این قرآن بخانیم به این قرآن بخانیم به این اقل در قرآن یا گرفتن در ترجمه قرآن روزانه دقیقه وقت بکنیم ببینید که قرآن در ما چی کاسیاتن، آریاتن. در قسمت کاسیاتن، آریات علماء مثلا سه چهار نظر دارند بعضی میگن که در ظاهر لباس پوشیده ولی در حقیقت برحنه هست گیر شرایطش ها گفتیم که یا لباسش چشمی باشه یا تنگ می باشه یا خوتم باشه و یا هم بعض قسمت های از او پاره می باشه. مثلاً دوباره در آز جور کرد، ازی برایت کس کس کس کس کس کشته بود اینجی، آه کی لغتش معلوم شده، ای کاسیاتان آریاتس. یا پیران خوب جور کده بنام پنجابی، پنجابی، خانم من پنجابی کشته دارم، آواهال، آه بقایران، آه کدی، خدا این نورم دت بقایران درکی، واقع لورت پنجابیان، آه پیرانش که از بقالایش سر وقتی که خانم می شن، زانو تمام ازش دلپش می شه. وقتی که کاسیاتن کاسیاتون آریات است کاسیاتن آریات است کاسیاتون آریات ارزنی که پیش نامحرم با پیشن میعن کاسیاتن آریات است پیش نامحرم است پیغمبر صلی الله علیه و سلم اگر یک زن از خانه خود برای وعتر کرده باشه کذا و کذا ایچی طور چنان پیغمبر سلام بسیار <laughs> با حیابید نمیگرد. باز اون مردم گفتن یعنی پیغمبر سلام که زناکار است. با کسی کرده پیغمبر کسی زنه که عطر از خانه برای فهیه کزا و کزا ایچی طور چی یعنی باز شارهین حدیث در مقابل گفته کس خبر ناشد زناکار است. <laughs> در آخ... دنیا به مساقل شردی توضیح میدهی و موی سرش را به نامهرم نشان میداد و بدنش را برای نامحرمان آرایش میکرد. خدا از اون نکدرد که چه جوانهایی را به انحراف کشان وانها را به عذاب خدا گرفتار کرد هر بار که با درد و رنج می و پود می شوند. پوستی تازه و عذابی دوباره دارند و لحظه ای آرامش ندارن از راه بیرون نروی که گرفتار می خدا رحمت کند ای را که اسب را برای هم به خدا راست گفتند که هر کس ازواج کند نصف دین خود را حفظ کند و در باره نصف دیگر آن باید از خدا بترسد. که خانه که پیش از خانه خود میکنه نهیم ما باسط راست نهیب باسط در کاسیاتن آریات داخل هستی در کاسیاتن آریات داخل هستی بنا زمانی که از خانه خود بیرون میبراید بوتهش تق تق میکنه کاسیاتن آریات یهو بعضی از علما میگن که کاسیات و ناریات این قسمت کردن. بعضی از کسا میگن که از نعمت های خدا پوشیده است، لکن از شکر خدا خالی است. خداوند خوب لباس دادش. خداوند خوب جوانی دادش. خداوند خوب برش همه چیز دادن، لکن یک روز هم خدا را شکر نمیکنه. وقت شکر خدا چه وقت میشه؟ که تو هر عضو بدنتان تو هر عضو بدنت مطابق حکم خدا استعمال بکنی. هر خدای استعمال مطابق حکم خدای از استعمال, پس تو عزیز تو مطابق حکم خدای استعمال که بگی که من مویایم می با من مخرم نبیم. آیا چهریت مطابقه حکم خدای از استعمال که نباش آیا در آروسی خدا رو بیاد داری؟ دایره در دستت است؟ روی تا بالا کردی؟ و در دروازه اصطاد استی؟ و کلی مردای نامحرم سنو سهل میکنن و تو خانده میری که درواز کن دروازه رو واس کن تو در جمله کاسیات و ناریات هستی اتخاله ایست وقتی که آروسی شد بسیاری کسا رو ببینی خوب دیندار است این مجرده که صدای شدنی خوری و آروسی گفاره شدنی دین کوچ در داروسی هیچ دینداری نیست داروسی دینداری نیست بولا نه کاسیات و ناریات استی ما خب میبین زه خوب وای زلگهی چی چه منه اوکی نیمنی اختیار دوتا بعضی کسای دیگه میگن بعضی علمهای دیگه میگن که لباس عادی پوشیده، ولی لباس تقوی ندارن کاسیات و ناریات خانم های هستند که لباس شان جور است اما تقوانه نداره خوب نماز میخوان خوب خوران شریف میخوان خوانند. خب منزو نکهی خوره گلی. خیر تلاوتو نکهی. خب خیل دبر غیبتو نه همکهی. او در توک و رو منز او تو خلق الله سه پا اقا چند خانه رو در چندین فامیله تو تباه کردی شیطانی میکنی چغولی میکنی سخنچینی میکنی گفت از این خانه را به اون خانه میبری خودت قرار با سر نماز سازش آه آه آه سعی کنیم سعی کوکوگل جان کوکوگل خوب لباسش درست است اما چندین خانه را در غمشان در در پشت هر قتل که است یک زن است که برای اون مردک که چیز میکنه که ای بگرفت به غیرته کمزاگانی که ای تفیز زه قتل مکن زه به غیرتی مکا. بخیر سیکو پلونه ای تو گفت به زن هم اینجا بعض میگه که ای زنه که لباس تقوا نداره از غیبت خدا حفظ نمیکنه در خانه ها جنجال میپرده تمام و روز بعض کسا جادوگرا جادوگره فالبینای که شاود و زوجه شاو با شیطان سجده میکنن این زنها میرن پیش اونمو شیطان ها با از پیش ازا جادو میگیرن و در بین خانه ها در زیر بالش ازی جادو را تیر کن. در زیر در کنج که تا کونجا وان جادو را در اون کنجک بان سر از بخوران سر تو زن در جمله دوزخی ها هستی نگو به خاطر چهار روز دن دنیا خدا دغذب خدای از زوجل گرفتار نکو و خانواده ها را باز تبو نکورین شما زن از المرء لم يلبس سيابا من الطقا از, ال از المرء لم يلبس سيابا من الطقا تقلب و عوریانا و انکانا کاسیا وقتی که نگه انسان لباس تقوی نداشت نگه تقلب و و انکانا کاسیا این نگه عبت الله نگه اگر لباس پوشیده باشد و خیرو لباس المرء تاعت ربیه بهترین لباس یک شخص طاعت پروردگارش و ولا خیر فی من کان لله آسیه و خیر نیزده و کسایی که به الله تعالی آسی و نفرمان بودن خب مائلات ممیلات مائلات ممیلات اینجا پیشن ما شما حدیث شریف چی خاندیم؟ خاندیم حدیث شریف که عنعبی حرای رتر عزادره ابو هريره روایت ها رو روایت است. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم که فرمود که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلام گفت سنفون من اهل النار لم ارهما دو طایفه از دوزخی ها هست که من اونارا تاباله ندیدین قوم یک طایفه از اونها قومی هستن که ماهم سیادون به امرایشان اونم قمچین هاست ها که از ناب البخری که ساختمان و قمچین ها مثل دم های گاو ها به یضربون توسط از قمچین ها اردما میذنان ونساء و, و هستند که کاسیات و مائلات، و مائات و ممیلات که اسنمت البخت المائله لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها و این ریحه ها لیوجد من مسیرت کذا و کذا ای حدیث شریف در صحیح مسلم آمده ابو حس... الحسین مسلم ابن حجاج ابن مسلم قشعیری نیساپوری که بنام امام مسلم است ای حدیث شریف نخل کرده که در بیروت چاپ شده دارالجیر و دارالعافا پورا چاپ کردن جلد ششم 168 و نمبر حدیث در مسلم شریف 5704 بود که ما ایره پیدا کردم امی حدیث شریف امچنان امام احمد در جلد دوم 355 تحت نمبر 865 نقل کردن امام امچنان ابو یعالی در جلد 12 صفحه 46 در نمبر 669 و ابن حبان در صحیح خود جلد 16 صفحه 500 حدیث نمبر 7000 461 رواید کرده این سنت های حدیث بود که در این کتاب های ها حدیث شریف آمده خب اینال کاسیات و ناریات فا میده نهیم سن ممیلات از بعد بترش توبه مائلات ممیلات در زبان عربی مائل علاقمندی من دیره میگن. یا کسی با یک کسی دیگر علاقه مندی داشته باشه این مگه این به این معایل است و ممیل باز این متعدیش میشه که مثلا این چی میشه که یک نفر خودش میخواد که یک کسی دیگر رو به خود چی بسازه؟ علاقه مند بسازه جذب کنه دیگرها را. و همچنان از کلمه میلان گرفته شده و میشه که بعضی حرکت هایی که در تمایل می باشه یعنی حرکت های دست مثل که رقاصه ها میکرن دست های خدا شورک میتر ایره هم بگیم که اینی مائله هست ممیله هست زن هایی که میرکسن و دختر هایی که میرکسن اینا هم در جمله مائلاتون ممیلات میشه طرف شما بچه ها جوانات دیوال باشن یارف استعمالگاه مودل میسازن گاه خنده بازار میسازن گای ستاره افغان میسازن گای ستاره شیطان میسازن و کل عزیز تحویلشام میکنه روشان با ما والا راست بپرسان بگه اینا پیشروی شما به خداوند تعهد میکنم که امین سیم کارتک روشان خدا سر از امروز باطل میکنم بخاطر چی که ما هر برنامه فسق و فساد که دیدیم ایده چی بودن؟ تنظیم کردیش چی بوده الاله کی است که سیم خدا مثل ما و راز روشان ات زنه ده زمین چی کنم جوان ها؟ الحمدرانه من سفاده میکرم ما موسو زده دارم امیران بشکنان اینکیتان تیر مار از سیم کارتش از این کارتش بشکنان این کارتش خنال کارت شیطان رو در جیب نگاه کرد در گناگار میشینه یعنی خدا ما رفع کنه تا دیروز نمیفهمیده امروز خامیده تو بشکنان شجا در کمره تا منو شانش بتی خوب من ایناله میگن در مائلات ممیلات بعضی ها هستن زنهای از جمله زنهای دوزخی هستن که خودشان مائل میکنن بر دیگرها و دیگرها را هم به طرف خود چی میکنن؟ مائل میکنن خب ایناله یک زن مسلمان یک دختر مسلمان به کدام هدف مثلا آراش کرده از خانه خود مبرایه مائلات ممیلات شد نشد شد نشد در مقابل نامحرم چی ضرورت دارن؟ این چه ضرورت داره اگر یک خانم از خانه خدا رایشکره داد بیرون میره تحت چی داخل میشه مائلات و ممیلات خودش بدرگار مایل میکنه بدرگار رو به طرف خود مائل میسازه خب بعضی از علما میگن که منظور از مائلات و ممیلات کسای هستند کسانی هستند که به بدی ها مل دارن و معلم گناه بر دگرها هستن استادای رقص استادای خندوازار کسانی که این پروگرام میسازند می و کسانی که ایره تنویل میکنن، کلشان در جمله مائلات و ممیلات داخل میشه. خودشان بیده دا گناه داخل هستن دگرها هم علاقه من به ای می سازن کسی که در آروسی بچی خود خاننده رو می ره. کسی که در آروسی خود رقاسه را میره کسی که در آروسی خود بچه و دختر را میره کسانه که پیسه میتر باز چند نفر رفیقای خود جمع کنه به فیلم ایندی کنید کسی که در خانه بری بر فیلم ایندی را چالان میکنه که سهل کنید این کلشان علاقمندهای گناه هستند و مردم چی میسازن؟ با گناه علاقمند میسازن کلش میگه که علما میگن اینا هم داخل میشه. کسای میگه شامل هستن که به بسیار ناز و حرکت میکنن شانه ها و بدن خود به حرکت میاورن رقاسه ها شامل میشه نمیشه در جوه جنجال بود مگه رقم خود در اسلام no problem گفتیم خود سعیست شیطان آدم غافل میزازد ورق خواستم همیسته و وفاظ برش یک که کلام نقص نداره در حالی که حرکت کردن شانه ها و دستار حرکت داده شانه ها را حرکت داده این کلیش در جمله مائلات و ممیلات و بدیه ها دعوت کننده هستند. هست کسانه که زنهای که من خود درسای است که همیشه کوشش میکنم درسای ما بچی نسمت به تو دمیرام که میرم در این دو کارا خف خف میکنم که چی جاته باز فورا از او دانش جور میتونم اینا که کنم راز را بهتان افشا کنم راز نمبر یک در جمله مائلاتون ممیلاتون خانم هایی هستن که در فروشگاه ها میرن که نفر آرایش فروش قرار تو میتونم لبسینتت بشم بزنم تو باشی رنگ تو رنگ دو متفزا مائلاتون ممیلات هست. با بسیار مائل. با بسیار رقابت با بسیار ناز دوکاندار که اپ یعنی <تصفيق> است. مرد از کی ایکی... چ... چ... چی حکم داره عقل سرای چی دوکاندار سر مخی کی دی عدا کروا رفتار حکم چی؟ دال یا واو سید در عربی دیگه قلدروان دغیث خانمه که میره پیش خیاط نه محرم استات نشه و او برش میگه دست تا بالا بیگی دست پایان بیگی آرام سید تیا سید شاگرد کیږس ها میگه نه میگه نلولم چوروب سری وقت‌ها سر های مردم خود خنده می‌کنین سر ازی باید چیکونین کنیم کنین من بی‌سری وقتها میگه ورا استاد یگاری که انتقاد می‌کنن میگه گپ میزنم مردم خنده می‌ده من که خنده نمی‌تَم من میووردیم گریہ کنیم علی گفایس که انسان یک مسلمان باید چی کنه گریہ کنه اس برای خدای چی قسم مسلمان هستیم با کدام کتاب ایمان داریم ولی مکی گفتین تو که ما پاکی بادت گفتیم المخمهگم انی کار هست نیست اول مردم افغانستان او دارن دوران ایبه خدا بخنده تیر میکنن عمره را عمره را کی چې کز د نیګه حیاته او له مهرم سره ای ورته مثل متریه تخرب بی ناروا ده دغه حرام ده د خدای الله راه نه در بغیراتی پریگ در در بغیراتی پریگ دا. در چند پلاو لگی بیا وائی چه تا بیا اغا تاپیزانی خوزتا تا چند وائی وائی کور تا اوائیم بیا بغیرات پلاو پلاو خو حق بانی زان بوگه مگتا قصای کس اما به حق و باید از بفام یک روز یک نفر تیر میشودم از راه غلق میفروه غلق های دروپ دید که هیچ کس نمیخره گفت سعیل و باید که نخرد. سایل سعیل و باید خود که از دقل گفت حق خود بشنو باز باید از رو از گوش نگی اما بشنو که بفامی که این کار که تو میکنی کار شیطان میکنی نامت ولی نامت ولی نمان کار شیطان ماشین باید دو شه یاد ندارم از کلام جوی یک کس خاده بود من لعنت بر گر ولی این است لعنت بر خدا خیرت بده زنده باد ملازم کار شیطان میکنی؟ نامت ولی تو بیا میگم استاد بلاسفیکات بلند بگم بگم تو سفید تو می آ اگر فرانا قزمیرش سفید ازی خوب به شرمین ولیی که اینو میقسم بی‌حایتی میکره اونم شیطان میکنی نامت ولی گرولی اینا لعنت پرولی الله اکبر این آر سکس گودم او برادر عزیز بسیار آبی شده بزرگترین مرض است که برای یک نفر کی شده بری یک نفر بزرگترین گناه و خطار و ترین دشمن بعد از شرک و کفر غفلت است غفلت چی هست که شیطان گناه را برای انسان چی تجربه میده عادی سی خیره سو خیره سو خیره سو خیره سی فالو گناه میکنه لاکه نمیفهمم که ما گناه میکنیم بر خودش بسیار عادی است یک نفر میینه میخونه خلاص قرار اجازه ششتا است اعلام نمیکنه لاکه کیفیتش چالان از تلویزیون چالان است ملائکی که من کااتین مشت کرده میره کردم میره شت کردم می رو میکنن تمام دفتر اعمال عضی از خواندن پر شد و خودش می تفات داشتریوری تکسی از در متررک که بالا شود خودش به چان مصروف است که باش که متر زیادش اویربارک از فلاینز فلار است تاکن قیفش چالان است و او او به حی خودشان درگوناه است و ششف نپیگان که کتزی بیشتر اورا را هم خذر به خدا گرفتار میکنن و خودشان حقکار است اونا را هم مجبور به گنامهداد. او درری بر از خدابت است اگر توی پنج دقی 5 دقیقه به خدا ده مسلمانای قندوز سعی کردن یک کسی من خبر داد قیامی جان گفت قندوز یک جوان مسلمان است که اوتل داره گفت اوتل خود 24 تا سی دی های اسلامی رو میمان گفت در روزهای اول وقتی که سی دی های اسلامی رو میمان یک تیر از شیطانایی که پیش از می آمدن نمی آمدند دیگه می فتنید. کلش سی دی های اسلامی رو میمانند گفت مسلمان ها از کل منطقه می نان خوردن اوتل از اینکه این دیگه جوش نیست هر کس مگه دعوت داوتا که سیدی اسلامی است چی خوب فایده کرد؟ فایده آخرت هم کرد خدا را خوشحال شد فایده دنیا کرد که اون روزی شان خدا من از حلال میرساند دیگه فایده کرد که های شیطان صفتش شد. دیگه فایده ایشت که دوستای خدا در در نانوشم نیخواه این حاله اون تو مسلمان رو ازم یاد بگیره. دریوار ما که از کتش بیشینی شیطان شیطان خط. یا سازه بانه یا رقصه بانه او بردار اگه هیچ کار تغیره میتونی باندل من هست که تضمیم دهیم نسیم از زمین تکسیسوار جنیم یک بیز دفعه یا پینجه دفعه از تغفر الله از تغفر الله بگون هر قدر میتونیم که از تغفر الله بگون او ظالم چیست از خدا بیترسین داری برا از خدا بیترسین نکنین خدا بیترس هم نکنی در گناه گرفتار و هفتش نفر هم بالای خود ه دیگه سر در جمله معلات و ممیلات و کدام مردم ها هستند کدام زن ها هستند زن هستند که در مقابل سازنده ها و رقاص ها میخزن می وجود خدا میلان میکردن ده سایه حرکت میدن گردن خود حرکت میدن سر خود حرکت میدن این دین میلان که اعضای بدن خدا شرک می در مقابل سازنده ها و رقاص ها و می این هم در جمله معلات و ممیلات هستند و خصوصا که در مقابل نامحرم ها وقتی که باشه بسیاری کسا هست یک روز یک کسی برای من میگن شیشتین در مجلس از برای خدا خود چیز که ندویم دلت میکرد حالا برادر، حال مشکل ایه است که صابت دیندارها بی دینها رو ملمت میکرد آلو بی دینها دینداره رو میگن. میکرد سرچف از انقلاب آمده انقلاب سور انقلاب گو بود نه؟ در انقلاب جاو این آدم. صاحبه انسان ها گوه ها رو ملامت میکنن ده. که تو در آقلت میری آله گوه های انسان ها رو ملامت میکنن در جای ششتش یک کسی یک دفن بگه پس که صحابه صحابه صحابه چیز؟ چیز؟ پس کن خانم من مثلا در فلانی مجلس خیص یک مجرایی داد شما چونه خدر دیگه یک سختی میکنین قال نظر هستم خب ما دیدم گفتم آلا اگر برای از چیز بگویم در روی کلاکی و جواب من غالبا در نوک زبانم است ها اگر بخویم که برای کس بگویم جواب در نوک هر کی زبان تیار اما تو سیرم کلاکی آماده است باز گفتم لا حول ولا قوه الا بالله گفتم برادر الله برا بنان مخریم مز گفت می‌ذین خود کلانکار کاری از برای خدا چی کلام کاری خاک پای کل من هست چی کلام کاری گید ما خیلی روز کردیم ما زندگی خود ما خیلی کلام کاری با خدا از کل توان کردم و وراث من هر وقت خدا برام دعا بکرین نه کلام دست استفاده کرده فقط در پیاب یک دعا بکرید بگو خدای بوسالم ببخش وعده است نه نه هر نکنه بسته چرا که خدا در این آره باز خدا چوب گرفتم تو خداییم نخوی به خدا گره یا قرور کنم یا تکبول چیزی که خانم مسئولیت فکر میکنم کنم حالا خیلی که نگویم چی تو کنم باز نمی مانه میوساد حالا بگو که چی میشه همی خانم اومد چی شد که اگه مجرایی دار گفتیم بیدار جان آخر نشد گفتیم بیدار خیلی روز بگید قدر شد پاس دادم بیدار تو بگید یک شود کو گرفت. باید گفتم براز خود چیز شوهه یا نه که بان خودت پیشانی تو تافه دوسیت بی‌غیرتی زدم میشد آک که پک مون دیگه آخرام که کاسه گامو من گفتم که صدغراز نگی گفتم که گفتم که صدغراز نگی گفتم که نکن گفت مکن تا نکنم این یک سخنم چنان خوش آمد که مپاس او بسیدی وقتا خدا چوب می گیرم؟ چوب می گیرم؟ می خود دیگر این و بمراهی بیخی جایزه گرفتا قابل ایسلامی ازدارد تیر خدا می گیرم؟ اگر توان که مراکمی بیشتر خدایه ایتو در تو بیشتر بیشتر؟ در مقابل ایتو کدامی گیرم؟ آیت قرآن رو بخونید همه قابل تا خدا میگیرد حدیث پیغمبر رو ببینید که رسول خدایی گفت خدا تور بخدا میخلید کلماتی حدیث رو که خانم حدیث پیغمبر هست گردن ما بسته که اگر ما یک کلمه رو از دل خود بگم کل گفت ما امروز که کات قاریجه برای قم اندودم که بیایم درس تجوید یاد بگیرم دیدم که درس خودم مونده تا که درس خودم تکمیل کنم گفتم برو قاریص قاریصان برن که من می درس امروز کلش که پاریس که از نظریات علما وذرا هر کدامش که بخوایم صفه به صفه از از از, از, از شاش هست و شرح هایی که سر بخار مسلم شریف شریش نوشته شده و احادیثی که مثلا شرح مشکات المسابيح هست شرح رياض الصالحين است اینا همه را من کشیدم یک یکی یک, یک یکیش کافی معنی بس برادر ما خیلی ند که بگم ما عالم هست. مالم ما خاک هستید حالالم نیستید ما لیکن چی میکنیم؟ فقط این همه قادر است که اورم 4 کلمیه عربی رو یاد گرفتیم میریم اون جمعی بال میپاریم بال می میپاریم اونم رو جو میگیم ترتیب کرده منبرتون میکنیم میکنین چه قله کفای علماء هست که به این نظر دادن کسانی داخل میشن که میراث سن هر کسی که بود پشت روی هر کسی که داشتید مایلون میکنن اعضای بدن خود حرکت میکنه دیگر سر جمله مائلات ممیلات سن های مائلات ممیلات تلویزیون هایی هستند که بر مردم رقص یاد میتوند خدای پاک کسایی که اوی پروگرام ها را نشر میکنند و خوشحال هست و رقصهای زبای رقاص ها را نشر میکنند الهی در روز قیامت کتی گوگوش و فریسا مسل نشر شد الهی کتی اون دوا را که مردم ما را میخواهد که رقص اون دور یاد بگیرد خدای کتی اون دوا اونجا هج داشت که مردم را کلشت تباک کردن کل ما را اطفال ما را از رزبین پردن خدای پدرهایی که بر اولادهای خود رقص چالان میکنن و قرار سنو شیشتار دانخ دا شور میدن خدای پاک او هم یا هدایت کنن اگر هدایتش نمیکنن مثل قارون واره غرقش کنن دیگه دیگه خود دیگه خود, خود چیز نماند از خدا نمیترسه اولادش کلمه را یاد نداره لکن کل راصا را یاد داره دختره که خودش راصا یاد داره گپای گوندوره یاد داره کل چیزا را یاد داره, داره. داره. و روز یک بی غیرت بر ما نرمیگه و صد مثلا دم تلویزیون انارکتیکرا سم مثلا فلان سیناف فلانیک فلانیک هست یا مریه تلویزیون میمون انا خانم های ما ویژه پیشوری از شیش تا تلویزیون مفتون مفت تو بی غیرت نمانت در پیش تلویزیون که چیزی داره چادر کنی گل کن خدا هم بیداره که نوگر یکی هست خدا هم که برزو از کجا پیسه میه که مردم اقوانستان گمراه و بیراه بساسه خدا هم از کجا برش سیرون و چکک میرسه تو خواست خدا همه ترس تو کشنا دووز میشه تو چرا خانم اولاد تپشریش رو ترا رو چالان میکنی بند تو دیگه در جمله اینمی مائلات و در جمله اینمی مائلات و ممیلات کسایی که در مصابقه ملک... مسابقات... های مسابقات زیبایی، اندام و زیبایی مثلا چیزا ملکه زیبایی و مچم فلانی و گفارا جور میکنند، این کلشان اعضای بدن خودند، این کلش مرز که از کافرا و بیدین و مرزای کسایی او کل زنایی که مقتلا به ایت سرگاره رو میکنند. اما ما شما یک مسلمان چون کارا بکنم خب اشتراک در فاشه های تمثیلی برای زنهای مسلمان برای زن مسلمان حق نیست که دوتا فاشه های تمثیلی که از های بدن خدا رکت بتا و پلانی کنه و در مقابل مردم چیز کنه و پدرش هم خوشحال هست که دخترم 500 دلار برش ماش میره خدا قباید کنه تو بی غیرت درد رؤون سهال که اسلمت البخت المائله دیگه علامات اینمی زن‌های دوزخی چی است که میگه موهایشون مثل کوهان‌هایش چطور است وقت ما اله یک قسم از شطور ها گفت که یک قسم داشت که تا وقتی که میره قدامی کوهان حرکت میکرد حالا همین خانم هایی که موهای خودا در روی بازار ترا شکل داده میگردند و سراش کلان کار من فکر نمیکنم برای این زنا چخه کلا کتا دارن از مردا خبر نمیکنن که بوده جو کلاقدر از لنگی موام کرده چیزای از کلر شده اینا هم در جمله اینمی زن‌های دوزخی شامل میشن که در مقابل مردهای نامحرم صدر خدا شکل میدن یا قسم بویای خدا تونی میدن و باسته مقابل مردهای نامحرم ظاهر میشن خب شاید بعضی ها پستان بگن خب در اینجا آخرش چی میگن؟ آخرش و سلام یک گفت بسیار بسیار خطرناک بیان میکنه و اگه با یک کلمه یاد داشته باشیم برای خواهرای خود بفهمیم که پیغمبرص در آخرش چی میگه خود گفت کاسیاتون و عاریاتون و, و رو و ممیلاتون روسهن که اسنمت البخت آله آل حکم حکمشه پیغمبر اکرم صلی الله علیه و بیان میکنه میگه لا يدخلن الجنه داخل چی نمیشن جنت جنت نمیشن ایفت نکرد خواهر عزیز به خاطر یکی همه که اینی از جنت محروم خدا بسازید به خاطر یک پیرانک که پنجابی خدا از جنت محروم بسازید به خاطر یک آرایشی که بالاخره سنوجی تام سیل کنه ها آل بیتی مردا عبدلشانو که یه چاله داشته باشه که سرامو یه جوم سیل کنه یکان وقت خدا چیز میکنم میگه عشق پیری گر کجون بعد سر به شهیدایی زنند ها یک آلطاری که روش 16 تا و هم ببینی خودت خود فتنه kada که، نکرد فتنه kada پوارا که گلم، مادر کلانه که گلم، ای که، یک پس پیری، خدا از خدا مستحق جهنم پیسی، ای فتنه kada مادر کلانجان جان که بی بی ما را این قسمو راش می کشی میکشی، ای خدا ده پیری خدا خراب میکسی، چی اصل میگه لا یَدْخُلُنَ الْجَنَّةَ، به جنت داخل نمیشن ولا یَجِدُ نری بی‌جگمند است که رسول خدا این صلی الله علیه رسد. و آله و جنت داخل نمیشن حتی می بوی جنت هم دم شام شامشان نمیرسسه بوی جنت هم براشون میسند و مسیره کذا و کذا پیغمبر شنیده که اگر انسان در جای بسیار دور باشه از اونجا هم بوی جنت برای انسان میرسند و بعضی از علمه ها را گفتم که به اندازه هفتات سال مسافه اگر کس داشته باشد بوی جنت در دماغش میرسند و یا به اندازه هفتاد سال از جنت خدا دور فاصله میدهند چرا عکت خواهر غلام؟ با خدا ما دوستتان دارند. با خدا ما بر خیری گفت میذاریم. با خدا برادر اجازه اگر تندان میگیم بر دوستیتان میگیم. اگر سخت میگیم بر دوستی و اگر داریم بر آن میتونیم بر دوستی میگیم. اگر پر میکنیم به خاطر دوستیتان میگیم. با خدا اگر از ماکارا شما را کسی دوست داشته باشد. با خدا از ما شما را دوست داشته باشد. تفریح شما را که ها ما می‌داد. ولی اونا به این چیزها خوشی میکردن و خدا که آمریکا به دردت بخوره، یا روس به دردت بخوره، یا این مردهای بی‌غیرت به دردت بخوره. با عزیز، خودتان، خودتان خدا اصلاح کرین خودتان از خدا بترسید. خودتان راه دین را تعقیب بکنین. ای چرا این قسمت میگه چرا قلب سخت گفته شده میگه به خاطر عزیز سخت گفته شده که در این جمع مشابهت با زنان فاسق و فاجر میعه از این خاطر یک زن مسلمان یک زن که میگه لا اله الا اللہ محمد و رسول الله صلی الله علیه و سلم خدا با با زنهای فاسق و فاجر بی دین و بی ایمان و زنهای مبتلا به ایت و زنهای که وسیله دست مرد هستند، هستن و خدا مبتلا نکنن در کشور اروپایی رفتیم تا روی یک کلان پروفسور استاد است تلویزیون چالان کرده یک زن آمد از خاطر یک دان لو لوتک میزنه ملاخ زد زد زد زد زد, زد دخت دختر اروپایی من این چرا ملاق میزنه آخر داخل میگه که اپن یک ق من گفتم پروفسور سغا گفتم آلو شما دختره میفروشین یا یک قلم ایناله ترجمه ما الات المیلات شما چای بود گفتنی اونلی اوردینری کوسشن دو یو وانت تو سیل د میشم دختره مکتب ازرا ور میارم دس شوم دد یک لنگر درام میره درام میره دوی زایت کار کرد دختران مردان کاتکالوی معتبرش وارد دروی پیاده رو و داشت. و دختران کاتکالویش کلش خواست پشت سرمان سایگه. این از کدکس کسی نباشه این دارد. ما گفتم ولی دارم واسکن میاد ویم که چطور است یا فرانس نشه نشکندم گپ خوبه. ایچ همونت کلی باش ولی چی مانند؟ ای فرزی جوانی، ای فرزی نکتایی، ای فی نام آدم سرد که توی درون می‌بینی آدای قلب می‌شود یک تفلسایزه لیکنی. حالا ما بخشی فکر محترم حالتا در پیره رو میرید روی طرف محترم مشابهت با زنهای کافر پاجر زنهای که چی هستن و خاطر ازی خسته گفته که تمام ایکارها رو بلما بگن که ای چی هستن ای کلش سبب بیحیایی سبب فساد جامعه سبب وای و خاطر چی میجا گفت اسبابیت به بی خود به صفحه چی است ضعف بودن ایمان است ایمانش ضعیف است این یکی هم. دومش از خدا نمیترسه دو تشریح نمی کنم سهمش تقلید کورکورانه تقلید کورکورانه هست چهارمش پیروی از مود و فیشن پنجمش بخاطر از ای پنجمش به خاطر از اینکه دشمنان اسلام این فشن کردن و این لباسا را اونا زیاتر رواج میتن و خوشحال میشن به ایکارا. کارا ششمش به خاطر که شوهرش وظیفه خود ادا نکرده و مکلفیت خود در مقابل خدا در مقابل قرآن نشینند بدي ان شاء الله خلاص سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين ولا قيمه للمتقين والصلاه والسلام على خير خلقهم محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اللهم ربنا اعطنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم اجل اخر كلامنا لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه تقدیم می